راوی مریم کیان به نام خدا اسم داستانمون هست پسر فقیر که با دخترم موش فرار کرد این هم روایت دیگری از مجموع روایت تبلیغی قدرتمندان البته آرزوی مردم تو داشتن پادشاهی مردم دوست در نشر این گونه افسانه ها موثر بوده رابطه ای ریش سفیدانه پادشاه با مردم تو برخی از افسانه ها احتمالاً دیادگاری از روابط قبیله ای. که با هم روایت خلاصه شده این داستان رو بخونیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچکس نبود. دو برادر بودند دو هر دو تاجر. یکی از آنها پسر و دیگری یک دختر داشت. این دختر و پسر همدیگر رو دوست داشتند. پدر دختر از پدر پسر ثروتمندتر بود. روزی خاستگاری برای دختر آمد. پسر برای دختر امویش پیغام فرستاد اگر شوهر کنی من در شب عروسی تو خودم را میکشم. دختر در جواب او پیغام داد اگه راه و چاار میدانی بگو پسر جواب داد اگه تو منو میخوای بیا با هم فرار کنیم. دختر و پسر هر کدام مقداری زر از خانه دزدیدند. پسر یک لباس مردانه تن دختر کرد و با هم به اسفهان فرار کردند. چند روزی در یک حجره کاربان سر زندگی کردن. دوست پدر پسر در اسفهان تاجر بود. پسر پیش اون رفت و گفت «میخواهم به شاه عریضه بنویسم و برایش بفرستم. چطور این کار را انجام دهم؟ مرد گفت اگر چیز قیمتی داری همراه با عریضت پیش شاه ببر تا او از تو نگهداری کنه. پسر رفت و ماجرا رو به دختر گفت یک دانه زمرد به گردن بند دختر بود اون رو به پسر داد تا برای شاه ببره آن زمان شاه عباس روزهای جمعه بار آن پسر روز جمعه عریضه و زمرد رو برداشت و پیش شاه برد و ماجرای خودش و دختر رو به اون گفت شاه پرسی چرا پدر دختر رو به تو نداد پسر گفت چون ثروت پدر من از اون کمتر بود شاه پرسید این زمورت از کیست؟ پسر گفت از خودم شاه گفت اگه تو این دانه قیمتی را داشتی میوردی پیش پدر دختر راست بگو پسر راستش رو گفت شاه دستور داد تا برند و دختر رو بیاورند دختر رو آوردند شاه ازش پرسید این پسر را چقدر دوست داری؟ دختر گفت به همان اندازه که این پسر منرا دوست داره شاه معمور فرستاد دنبال پدر و مادر اونها پسر رو پیش خودش نگه داشت و دختر بعد از ده روز پدر و مادرش اومدن شاه از پدر و مادر پرسید چرا دخترت رو به این پسر ندادی؟ جواب داد چون اون لیاقت دختر من نداره شاه گفت حالا این پسر پسر منه دخترت رو به پسر من میدهی؟ پدر دختر سرش رو پایین انداخت شاه گفت سکوت علامت رضایته هفت شبانه روز جشن گرفتند و دست دختر را به دست پسر دادند. شاه عباس پسر را پیش خدمت خودش گرد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. قصه از غول ها و کوتوله ها. ماشره از جادوگر